پاکستان بو ایناویستا. در ملاقات بعدی نورا از کتابخانه نیمه شب خانم علم به او کمک کرد شبیه ترین زندگی را نسبت به آنچه روی برچسب بطری نوشیدنی رستوران خوانده بود پیدا کند بعد هم کتابی به نورا داد که او را به آمریکا برد در این زندگی اسمش نورا مارتینز بود و با مردی مکزیکی آمریکایی با چشمان براغ و چهل و چند ساله به اسم ادواردو ازدواج کرده بود. نخستین ملاقاتشان در همان یک سال تعطیلات بعد از اتمام دوران تحصیل بود که نورا همیشه حسرتش را میخورد. بعد از مرگ پدر و مادر ادواردو در سانهی قایق سواری، دورا این اطلاعات را از مقالهای در مجله مشتاقان نوشیدنی به دست آورده بود که او و ادواردو آن را قاب کرده و در اتاق تمچشی خانهشان آویزان کرده بودند. ارس نسبتا خوبی گیر ادواردو آمده بود و تاکستانی کوچک در کالیفرنیا خریده بودند. در ارز سه سال کارشان مخصوصاً به خاطر گونه‌های انگوری شیرازی که به کار می‌بردند آنقدر رونق پیدا کرد که توانستند تاکستان بغلی را هم وقتی برای فروش ارز شد بخرند اسم نوشیدنی سازیشان را گذاشته بودند تاکستان بوئناویستا که در دامنه‌های کوهستان سانتا کروز قرار داشت فرزندی هم به اسم رو داشتند که نزدیک مونتریبی به مدرسه شبانه روزی می‌رفت بیشتر درآمدشان از تورهای نوشیدنی خوری بود. اتوبوس اتوبوس پر از آدم در فواصل چند ساعتی سر میرسیدند. آنقدر هم ساده بودند که نورا خیلی راحت می توانست برایشان نقش بازی کند. اینطور پیش میرفت ادواردو پیش از رسیدن اتوبوس ها تصمیم می گرفت کدام نوشیدنی ها را توی لیوان بریزند و بطری ها را به نورا میداد. بعد که درباره مقدار ریخته و که توی هر لیوان بیخیالی میکرد، ادواردو با لحن شاد و مهربانش انگلیسی و اسپانیایی را ترکیب میکرد و میگفت اوهو نارا دیسپاسیو، آرومتر، یه ذره زیاد ریختی سیاست گردشگران آمدند و در حالی که نوشیدنی‌ها را ذره ذره مزه می‌کردند و در لیوان می‌چرخاندند، نورا فقط عطر نوشیدنی را بو می‌کرد و می‌کوشید به تقلید از ادواردو کلمات درست را به زبان بیاورد. توی این یکی میشه عطر چوب رو حس کرد یا اینجا میتونین رایحه گیاهان مختلف رو استشمام کنین، تمشک خوشبو و غلیز و نارنگی عطراگین که با کمی رایحه زغال سوخته ترکیب شده. هر کدام از زندگی هایی که نورا تجربه کرده بود، مثل موومان های مختلف سمفونی، حس متفاوتی داشتند. این یکی هم حسی نسبتاً بشاش و شادیاور داشت. ادواردو طبیعت بسیار مهربانی داشت و به نظر میآمد ازدواج موفقی داشته باشند. شاید حتی به موفقیت ازدواج زور تصویر شده روی برچسب بتری نوشیدنی که حین لیسیده شدن با زبان سگ عظیم و جسته دیلن با اون نوشیده بود نورا حتی اسمهایشان را به یاد داشت جنین و ترنستورنتون اسمی کرد حالا خودش هم روی برچسب بطری زندگی می کند. ظاهرش را که داشت مدل کالیفرنیایی موهایش دقیق و بیعیب و نقص بود به نظر میآمد خیلی خرج دندانهایش کرده باشد. پوستی برونزه داشت و با اینکه احتمالاً مقدار زیادی نوشیدنی شیراز مینوشید سالم سر حال به نظر می رسید. شکمش هم محکم و صاف بود که میشد با یک نگاهت زد هر هفته ساعتها وقت صرف ورزش پیلاتس می کند. با این حال تنها بخش آسان این زندگی نبود که وانمود کند خیلی چیزها درباره نوشیدنی ها میدارند. نقش بازی کردن در هر زمینه‌ای برایش خیلی آسان بود که این نشان می‌داد دلیل رابطه ظاهرا موفقش با ادواردو این است که ادواردو در واقع توجهش چندانی به اون نشان نمی‌دهد. پس از رفتن آخرین گردشکران ادواردو و نورا یک لیوان از نوشیدنی خودشان را در دست گرفتند و زیر ستارگان نشستند. ادواردو گفت آتیش سوزی لوسانجلس رو مهار نورا نمیدانست در این زندگی چه کسی در خانه لس لسانجلسی نورای ستاریگ پاپ زندگی می کند چه خوب؟ آره؟ نورا به آسمان صاف و سرتا سر پوشیده از صور فلکی خیره شد و از ادواردو پرسید قشنگ نیست؟ چی؟ کهکشان آره؟ ادواردو سرگرم گوشیش بود و حرف زیادی نمی زد بعد گوشیش را زمین گذاشت و باز هم حرفی نزد نورا در روابط انسانی سن و سکوت می‌شناخت یکی سکوتی که از بی‌توانی و در این حال پرخاش نشأت می‌گیرد یکی سکوتی که می‌گوید ما دیگر حرفی برای گفتن نداریم و دیگری سکوتی که ظاهراً ادواردو و نورا بین خودشان ساخته بودند سکوتی که از اثر بی‌نیازی به صحبت ایجاد میشد. سکوتی پیش هم بودند درست همانطور که آدم می‌توانست در تنهایی ساکت بماند و مشکلی نداشته باشد با این حال نورا دوست داشت حرف بزند ما با هم شادیم مگه نه؟ چی شده اینو می پرسی؟ چیزی نیست خودم میدونم دونم که شادیم فقط بعضی وقتا دوست دارم بشنومش آره شادیم نورا نورا جرعی از نوشیدنیش نوشید و نگاهی به همسرش انداخت با وجود هوای کاملا ملایم محیط پلیور به تن داشت ادواردو مدتی دیگر پیشش ماند و بعد بلند شد و زودتر از او برای خوابیدن رفت. من یکم دیگه همینجا میمونم. ادواردو مشکلی با این موضوع نداشت و پس از کاشتن بوسهای روی سر نورا سلانه سلانه دور شد. نورا لیوان در دست بلند شد و میان تاکهای روشن شده با نور ماه قدم زد. به آسمان صاف و پر ستاره خیره شد. این زندگی مطلقاً هیچ مشکلی نداشت. اما را در دل اتشی حس می کرد که او را به تجربه کردن چیزهای دیگر، زندگی دیگر و احتمالات دیگر فرا میخواند. حس می کرد هنوز توی هواست و آماده فرود آمدن نیست. شاید بیشتر از آنچه فکر می کند به هوگل شباهت دارد. شاید به راحتی ورق زدن کتاب می توانست زندگی مختلف را از سر بگذراند و تجربه کند. با درک اینکه فردا حالش بد نخواهد شد بقیه نوشیدنی را هم سرکشید زمزمه کرد خاک و چوب چشمهایش را بست دیگر خیلی طول نمی کشید. به هیچ وجه همانجا ایستاد و منتظر ماند تا ناپدید بشود زندگی های متعدد نورا سید نورا کم کم چیزی را فهمید چیزی که هوگو توی آن آشپسخانه در اسوال برایش توضیح نداده بود برای تجربه کردن زندگی های مختلف لازم نیست از تمام جنبه های مختلف آن زندگی ها لذت برد فقط کافیست است هرگز از این فکر ناامید نشود که سرانجام جایی زندگی هست که می توان از آن لذت برد همچنین لذت بردن از زندگی به آن معنا نیست که در آن زندگی میماند. فقط تا زمانی که نتواند زندگی بهتری را تصور کند، آنجا میماند. با این حال، نکته تناقضامیز ماجرا این بود که هرچقدر نرا زندگی های بیشتری را تجربه می کرد، قوه تخیلش هم قوی تر می و در نتیجه راحتتر می توانست یک زندگی بهتر را تصور کند. بنابراین نورا در گذر زمان و به کمک خانم علم کتاب متعددی را از قفصه ها برداشت و تلاشش برای پیدا کردن زندگی درست به تجربه زندگی های متعدد و متفاوت ختم شد. یاد گرفت که از بین بردن پشیمانی ها و حسرت هایش در واقع راهی برای به حقیقت پیوستن آرزوهایش بود. چون هر شیوه زندگی که به ذهنش می رسید سرانجام در جهان در حال انجام شدن بود. در زندگی در پاریس زیستن گیرانه ای داشت و در دانشگاهی توی مونپارناس زبان انگلیسی درس می داد. کنار رود سن دو چرخه سواری می کرد. روی نیمکت ها و کتاب می خواند. در زندگی دیگری مربی یوگا بود و مثل جغت ها می توانست گردنش را تا حد زیادی بچرخاند. در زندگی شنا را ادامه داده بود، اما هرگز سعی نکرده بود وارد مسابقات المپیک شود، فقط محض تفریح شنا میکرد. در این زندگی در اقامتگاه ساحلی سیدخیس نزدیک بارسلونا نجات غریق بود، زبان کاتالان و اسپانیایی را به راحتی صحبت می کرد و دوست صمیمی با مزدهی به اسم گابریلا داشت که یادش می آمد چطور چطور سواری کند؟ با هم دیگر، آپارتمانی در فاصله پنج دقیقه ساحل اجاره کرده و همخانه بودند. در یکی از زندگیها نورا به نوشتن داستانهایی ادامه داده بود که گهگاه در دوران دانشگاه مینوشت و حالا نویسنده شده بود و کتاب چاپ کرده بود. رومانش به اسم شکل حسرت، نقد‌های پرسر و صدایی گرفت و نامزد دریافت جایزه ادبی مهمی شد. در این زندگی توی کلوپ اعضای ویژه سوهو که به طرز ناامید لوس و خنک بود با دو تهیه کننده مهربان و خوش از شرکت فانوس جادویی نهار خورد و فهمید که میخواهند از روی کتابش فیلم بسازند. در نهایت یک تکه نان توی گلویش پرید و نوشیدنی قرمزش را با بیحواسی تمام روی شلوار یکی از تهیه کننده ها ریخت و حسابی ملاقاتشان را خراب کرد در زندگی دیگری، پسر نوجوانی به اسم هنری داشت که نورا هرگز نتوانست درست و حسابی با او صحبت کند، چون همیشه در رو به روی او میبست. در زندگی دیگری، پیانیست کنسرت بود. در آن مدت در کشورهای اسکاندیناوی تور برگزار میکرد و هر شب برای تماشاچیان مست و لای اقل آهنگ میزد. تا اینکه در نهایت یک بار که داشت در تالار فنداندیای هلسینکی کنسرتوی شماره دوی شوپن را به طرزی بسیار فاجعه آمیز مینواخت به کتابخانه نیمه شب برگشت در زندگی دیگری فقط نان تست می‌خورد در یک زندگی به اکسفورد رفته بود و در کالج سنت کاترین در فلسفه سخنرانی می کرد و در خانه شهری متعلق به دوران جورجی و میان همسایگانی محترم و بی سر و صدا زندگی تنها و آرامی داشت. در زندگی دیگری غرق احساسات بود. همه چیز را کاملاً عمیق و شدید احساس می کرد. هر ذره شادی و قم. یک لحظه ممکن بود هم سرشار از نزد باشد و هم سرشار از درد. انگار که این دو حس مثل پاندلی متحرک به همدیگر وابسته بودند. یک پیاده رویه ساده به بیرون می توانست احساس غم سنگینی به دلش بیاندازد صرفا به این خاطر که حین پیاده رویهش خورشید پشت ابر پنهان شده. دقیقاً در نقطه مقابل ملاقاتش با سگی که مشخصاً از دیدن او خوشحال بود میتوانست چنان احساس سرخوشی محضی در او ایجاد کند که بخواهد همان لحظه از شادی آب شود و توی زمین فرو برود. در آن زندگی نورا کتاب اشعار امیلی دیکنسون را روی میز کلار تختش داشت. و فهرست آهنگی به اسم مواقع سرخوشی شدید و یکی دیگر به اسم مرهمی برای دوباره ساختنم وقتی در هم شکستم ساخته بود. در یک زندگی فیلم سفرهایش را توی یوتیوب میگذاشت و یک میلیون هفصد هزار مشترک داشت و تقریبا همان تعداد آدم هم در اینستاگرام دنبالش میکردند. معروف معروفترین ویدیوش هم فیلمی بود که توی آن در شهر ونیز از یک کراجی توی آب میافتاد. همچنین فیلمی درباره روم ساخته و اسمش را روم درمانی گذاشته بود. در زندگی، مادری تنها و بیشوهر بود و نوزادش به معنای واقعی کلمه هرگز نمی در زندگی دیگری، نویسنده یکی از روزنامه های زرد بود و در ستون خبریش قصه هایی از روابط عاطفی رایان بیلی مینوشت. در یک زندگی، ویراستار تصویری مجله نشنال جوگرافیک بود، در زندگی دیگری معماری علاقه من به محیط زیست بود و با ساختن ویلایی که آب باران را جمع می‌کرد و برقش از انرژی خورشیدی تأمین می‌شد، زندگی آری از هر گونه آلودگی برای خودش ترتیب داده بود. در یک زندگی توی بوتسوانا مددگار بود. در یکی دیگر از گربه های مردوم مراقبت می‌کرد. در آن یکی در پناهگاه بی‌خانمان‌ها داوطلب می‌شد. در زندگی دیگری شبها روی مبل تنها دوستش می‌خوابید. در یک زندگی در شهر مونترال استاد موسیقی بود در زندگی تمام وقتش را صرف جر و بس با افرادی ناشناس در تویتر میکرد و بیشتر تویتهایش را با بهتر باش به پایان میرساند اما در خفا میدانست که این حرف را به خودش میزند در یکی توی هیچ کدام از شبکه های اجتماعی حساب نداشت. در آن دیگری هرگز الکل ننوشیده بود در یک زندگی قهرمان شطرنج بود و برای مسابقه به اوکراین رفته بود. در زندگی دیگری با یکی از اعضای پایین رتبه خاندان سلطنتی ازدواج کرده بود و از هر لحظه زندگیش متنفر بود. در یک زندگی تنها اشعار رومی و لاوتسه را در فیسبوک و اینستاگرامش نوشت. در دیگری سه بار ازدواج کرده بود و حتی از سومین شوهرش هم حسرتش سر رفته بود. در زندگی گیاهخوار و وزن بردار بود. در زندگی دیگر به مناطق مختلف آمریکای جنوبی سفر میکرد و در آن لحظه درگیر زلزلهایی در شیلی بود. در یک زندگی دوستی به اسم بکی داشت که هر موقع اتفاق خوبی میافتاد میگفت وای چه باحال. در زندگی دیگری دوباره با هوگو ملاقات کرد که در ساحل جزیره کورس قواسی میکرد. توی باری نزدیک ساحل مست کردند و با هم دیگر درباره مکانیک کوانتوم حرف زدند تا اینکه سرانجام هوگو وسط حرف زدن ناگهان از آن زندگی رفت. نورا ماند و هوگوی سردرگمی که سعی می کرد اسم نورا را به خاطر بیاورد. در بعضی زندگی ها نورا توجه زیادی به خودش جلب می کرد. در بعضی دیگر هیچ توجهی جلب نمی کرد. در بعضی زندگی ها پولدار بود، در بعضی زندگی ها فقیر. در بعضی سال و حال بود، در بعضی دیگر حتی برای بالا رفتن از راه پله نفسش بند می آمد. در بعضی زندگی ها روابط عاطفی داشت و در بعضی دیگر تنها بود. در خیلی از زندگی ها هم جایی میان این دو. در بعضی زندگی ها مادر بود اما در بیشترشان نه. لورا شغل زیادی را تجربه کرده بود. ستاریگ راک، قهرمان المپیک، آموزگار موسیقی، معلم پایه دبستان، استاد دانشگاه، مدیر کلی شرکت، خبرنگار، سراشپز، یخچال شناس، اقلیم شناس، آکروباتکار، باقبان، مدیر حسابرسی، آرایشگر، سگردان هرفعی، منشی دفتر کار، برنامه نویس، برنامه نویس، فروشنده نظافتچی هتل، سیاست مدار، وکیل، کیف قاب، رئیس مرکز خیریه محافظت از اقیانوس فروشنده مغازه دوباره، گارسون، سرکارگر و ناظر شیشگر و هزار جایگاه شغلی دیگر. برای رسیدن به محل کارش، مسافت های بسیاری را با ماشین، اتوبوس، قطار، کشتی، دوچرخه و پیاده طی کرده بود. دهها و صدها و هزاران ایمیل دریافت کرده بود رئیسی 5 و سه ساله با دهانی بسیار بد بود داشت که زیر میز پای او را لمس کرده و عکسی از اندام جنسیش به نورا نشان داده بود همکارهایی داشت که دربارش دروغ میگفتند همکارهایی که عاشقش بودند و از هر دوی اینها بیشتر همکارهایی که هیچ رفتار خاصی نسبت به او نداشتند در زندگی های زیادی تصمیم گرفته بود شاغل نباشد در زندگی زندگی‌های دیگری هم اصلا کارگیر نمی‌آورد که بخواهد شاغل باشد. در بعضی زندگی‌ها سقف شیشه‌ای جامعه را شکسته و از آن گذشته بود. در بعضی زندگی‌ها صرفاً آن شیشه‌ها را تمیز می‌کرد. همیشه یا بیش از حد برای شغلش مهارت داشت یا اصلا مهارتی نداشت. یا خیلی خوب و راحت می خوابید یا خیلی بد. در بعضی زندگی‌ها قرص ضد افسردگی می‌خورد. و در بعضی دیگر حتی برای سردرد قرص ایووپروفین نمیخورد. در بعضی زندگی ها بیماری حراسی داشت و بدنش کاملا سلامت بود. در بعضی زندگی ها هم بیماری حراسی داشت و هم بیماری های شدید و متعدد. در بعضی زندگی ها هم اصلا بیماری حراسی نداشته. در یک زندگی خستگی مفرت و در زندگی دیگر سرطان داشت. در یک زندگی فتخ دیسک بین مهره داشت و در زندگی دیگری دندههایش در تصادف رانندگی شکسته بودند. به طور خلاصه زندگی های بسیاری را از گذرانده بود. در آن زندگیها خندیده، گریه کرده و احساس آرامش، وحشت و احساسات دیگر را تجربه کرده بود. میان تمام این زندگی ها هم همیشه خانم علم را در کتابخانه ملاقات میکرد. در ابتدا این گونه به نظرش می رسید که هرچه زندگی های بیشتری را تجربه کند، در انتقال میان زندگی ها مشکلات کمتری برایش پیش می آید. هیچ وقت به نظر نمی کتابخانه در معرض فرو ریختن یا از همپاشیدن یا به کل ناپدید شدن باشد. حتی خیلی از مواقع لام ها هم سوسو می زدند. انگار نورا به درکی از زندگی رسیده بود و می دانست اگر هم تجربه ناخوشایندی پیش بیاید قرار نیست همیشه اینطور باشد متوجه شد دلیلش برای خودکشی نه اندوه گین و ناراحت بودن بلکه این حقیقت است که نورا به خودش قبولانده بود راهی برای فرار از این اندوه نیست نوراحت میزد. همین شالوده و در اون اصلی افسردگی و نیز تفاوت میان ترس و ناامیدی باشد. ترس وقتی بود که وارد سردابی میشد و از این می ترسید که در پشت سرش بسته شود. ناامیدی وقتی هست که در پشت سر بسته و قفل شود. اما با هر زندگیی که تجربه می کرد، چون مهارتش در استفاده از قوه تخیلش بیشتر می شد، به نظر می رسید آن در استعاری باز و بازتر می شود. بعضی وقتها کمتر از یک دقیقه و گاهی هم روزها یا هفته در زندگی می ماند. اینطور به نظرش می رسید که هرچ زندگی های بیشتری را از سر می کمتر در آنها احساس آرامش می کند. مشکل اینجا بود که نورا کم کم فراموش میکرد که کیست. مثل نژوایی آرام که دهان به دهان بچرخد و تکرار شود کم کم حتی اسمش هم برایش به کلمه بی معنا تبدیل میشد. در آخرین مکالمه درست و حسابیش با در آن بار ساحلی در جزیره کورس به او گفت اینطوری فایده نداره. دیگه خوش نمیکساره. من مثل تو نیستم. جایی واسه موندن لازم دارم. اما اینگار زمین زیر پام هیچ وقت محکم و ثابت نیست. همه لذتش به پریدن بین زندگی هاست. مونمی. همه لذتش به پریدن بین زندگی هاست. مونمی. دوست من. اما اگه لذت اصلی توی موندگار شدن باشه چی؟ دقیقا همه لحظه بود که هگو به ویدو ورزخیاش برگشت. هوگو دوم گفت ببخشید. چور ای از نوشیدنیش نوشید و خوشید پشت سرش غروب گرد. یادم رفته شما کی بودین لورا گفت نگران نباش خودم هم یادم رفته بعد خود نورا هم گویی در افوق بنیده شده باشد از پیش او ناپدید شد